من بنده آسیم رضای تو کجاست، تاریک دلم نور و سفای تو کجاست، ما را تو بهشت اگر به طاعت بخشی، این موز بود بدت و عطای تو کجاست. من هیچ ندانم که مرا آن که کرد اهل بهشت خوب یا دوزخ زشت، جامی و بطی و بربتی برلب کشت، این هرسه مرا نقد و تو را نسیه بهشت. من می خورم مخالفان از چپ و راست، گویند مخور باده که دین را اعداست، چون دانستم که می ادوی دین است، و الله بخورم خون ادو را که رواست نیکی و بدی که در نهاد بشر است، شادی و غمی که در قضا و قدر است، با چرخ مکن حوال در ره عقل، چرخ است و هزار بار بیچاره تر است.